نوار با همکاری نشر روزگار تقدیم می کند سال تنهایی محصر جاودان گابریل گارسیا مرکز فصل سالها بعد وقتی سرهنگ آرلیان و بو اندیا در مقابل جوخی آتش قرار گرفت بعد از ظهر دور دستی را به یاد آورد که پدرش او را برای کشف یخ برده بود. در آن زمان مکندو یک روستای بیست خانواری با خانه های خشتی بود. این روستا در ساحل رودی ساخته شده بود که آب آن از روی سنگ های صاف و سفید بزرگی میگذشت. سنگ‌هایی که شبیه تخم های حیوانات ما قبل تاریخ بودند دنیای اطراف محل زندگی ها انقدر تازه بود که خیلی از چیزها هنوز اسمی نداشت و برای نام بردن آنها می بایست به سویشان اشاره کرد هر سال، در طول ماه مارس خانواده از کولی های پوش به آنجا می آمدند و چادرهای خود را در نزدیکی روستا برپا می‌کردند. آنها با دمیدن در سرنا و کوبیدن طبل و به نمایش گذاشتن اختراعات جدید حضور خود را اعلام می داشتند. نخست ها آهن روبار را به اهالی روستا شناساندند یکی از آنها مردی درشت اندام بود با ریش جولیده و دست های شبیه چنگال های پرستو که خود را ملکیادس می نامید. او نمایشی را در معرض تماشای عموم می گذاشت که خودش آن را هشتمین عجایب دانشمندان کیمیاگر مقدونیه می نامید. خانه به خانه می رفت و دو شمش فلزی را با خود می کشید. همه از می کشید. تابه انبرها و منقلها که از جای خود سرنگون می شدند شگفت زده بودند در اثر فشار کشش میخ ها و پیچ های تیرک های ها به پایین خم شده و در معرض شکستن قرار می گرفت حتی بعضی از چیزهای آهنی که پیشتر گم شده بودند از جای خود به بیرون می و با صدای ترق و تروق به دنبال آهنروباه های سهرامیز ملکیادس کشیده میشدند. در اینجا بود که آن کولی با لحجه قلیزی چنین اعلام کرد. همه جون دارن، اما خابیدن، باید باید بیدارشون کرد. خوز کادیو و که تخیلات لجانگسیخته او همواره به سوی ماورای طبیعت و معجزات و سهر و جادو میرفت. با خودش فکر کرد شاید بتوان از آن اختراع بیمصرف برای بیرون کشیدن طلا از دل زمین بهره گرفت. اما ملکیادس که مرد صادقی بود او را از این کار برحضر داشت و گفت این چیزا به درد همچین کاری نمیخورن. اما خوز آرکادی و در آن زمان صداقت کلام آن کولی را باور نکرد. و آن دو شمش آهنروپا را با یک قاطر و دو راس بزغاله معامله کرد همسر او اورسولا یواران که برای افسایش درآمد ناچیزشان به آن حیوانات متکی بود نتوانست شوهرش را از این معامله منصرف کند شوهرش در جواب او گفت طول نمی کشه اونقدر طلا داشته باشی که کف اتاقای خونه رو با شمشای طلا فرش کنی و برای نشان دادن درستی ایدهش چندین ماه سخت به فعالیت پرداخت. او وجب به وجب آن منطقه حتی بستر رودخانه را جستجو کرد و آن دوشم شاهن را با خود به این طرف و آن طرف می‌کشید و وردهای ملکیادس را با صدای بلند از بر میخواند. اما چیزی پیدا نکرد و تنها یک زره قرن پانزدهامی از زیر خاک بیرون کشید که تکه های آن در اثر زنگ زدگی به هم چسبیده بود و شبیه یک کدو تنبل شده بود. وقتی خوزارکادیو به کمک چهار کارگری که همراهش بودند توانست زره را از هم باز کند، اسکلت آهکی ای پیدا کرد که یک جعبه کوچک مسی به گردنش بود. درون جعبه تنها مشتی موی زنانه قرار داشت. در ماه مارس بود که ها دوباره بازگشتند. این بار هم یک دوربین صحرایی و یک عدسی به بزرگی صفحه یک تبل را به عنوان آخرین اختراع یهودیان آمستردام به همراه خود آورده بودند تا به نمایش بگذارند. برای این کار ابتدا یک زن کولی را در انتهای روستا نشاندند، سپس دوربین را روی پایی جلوی ورودی یک چادر نصب کردند و هر کدام از اهالی تنها با پرداخت یک سکه کمبه‌ها میتوانستند با نگاه کردن در آن دوربین زن کولی را در یک قدمی خود ببینند. رئیس کولی ها ملکیادس با مشاهده شگفت زدگی مردمان روستا بادی به قبقب انداخته و چنین بیان کرد. دانش فاصله ها را از بین برده. طولی نمی کشه که انسان بادر خواهد بود هر اتفاقی رو تو هر نقطه از زمین تو فاصله زمانی کوتاهی مشاهده کنه به این که حتی از خونه خودش خارج بشه. او در آفتاب سوزان دم ظهر هم یک نمایش شگفتانگیز دیگر را با آن عدسی بزرگ به نمایش گذاشت. برای این کار مقداری علف خشک را در وسط یک خیابان قرار داد و نور آفتاب را با استفاده از آن عدسی به روی آنها متمرکز کرد. در عرض چند سنیه علفها به آتش کشیده شد خوز ارکادی و که هنوز از شکست خود در رابطه با آن آهن روباها پند نگرفته بود این بار هم با مشاهده قدرت آن عدسی درشت به این فکر افتاد که شاید بتوان از آن وسیله به عنوان یک اسلحه جنگی بهره گرفت این بار هم ملکیاده سعی کرد او را از این فکر منصرف کند اما در نهایت، حاضر شد آن عدسی را با دو شمش آهن روبا و سه سکه مستعمرهی معامله کند. ارسلا همچون نتوانست جلوی شوهرش را بگیرد، از فرط حیرت و ناراحتی فقط توانست گریه کند. آن سکه ها از محتویات صندوخچهی بود که پدرش با یک عمر جویی در فقر و فلاکت پسانداز کرده بود و او، آن را زیر تخت خواب خود برای روز مبادا چار کرده بود اما خوز و ژارکادیو ها در این مورد هم با همسرش مشورتی نکرد و آنقدر در آزمایش‌های علمی خود غرق بود که نزدیک بود جان خود را بر سر این کار بگذارد او برای نشان دادن اثرات مخرب عدسی بر روی قشون دشمن خودش را در معرض تابش نور متمرکز شده آن ذره قرار داد و در نتیجه بدنش به شدت سوخت و تاول زد و مدتها طول کشید تا بهبود یابد اما با وجود اینها متنبه نشد و در اثر خشم ناشی از اعتراضات همسرش به خطرناک بودن این اختراع چیزی نمونده بود که خانه را با آتش بکشد برای رسیدن به اهداف خود ساعتهای متمادی در اتاق خود می‌نشست و توانایی احتمالی سلاح برجسته خود را محاسبه میکرد. تا اینکه توانست دستورالعمل آموزشی شگفتانگیزی را سرهمبندی کند بعد آن را به همراه چندین صفحه طرح و نقشه و توضیحات مفصلی پیرامون آزمایش های تجربی خود توسط پیکی برای دولت فرستد پیکی که برای رسیدن به مقصد رشته ها را در نوردید در های بیشماری گم شد از رودخانه های سیلابی عبور کرد و چیزی نمانده بود که در اثر ناامیدی و طاعون و حمله جانوران وحشی تلف بشود اما سرانجام به جاده رسید که قاطرهای حامل پست از آن عبور میکردند کردند با اینکه مسافرت به پایتخت در آن زمان تقریبا ناممکن بود خوزارکادیو قصد داشت به محض اینکه دولت به او دستور بدهد به خودش را به پایتخت رساند و اختراعش را در مقابل مقامات نظامی به معرض نمایش بگذارد تا بتواند شخصا هنر پیچیده جنگ خورشیدی را به آنها آموزش دهد او چندین سال منتظر پاسخ ماند تا اینکه عاقبت از انتظار کشیدن خسته شد و با ناامیدی شکست پروژه خود را پذیرفت صداقت آن پیرمرد کولی وقتی برایش ثابت شد که سکه های او را بازگردند و زربین خود را پس گرفت و همچنین نقشه جغرافیایی جغرافی های پرتغالی ها و ابزارالات دریانوردی در اختیارش گذاشت در ضمن خلاصه از مطالعات و تحقیقات هرمان راهب را با دستخط خود به او داد تا بتواند از رویانها طرز کار استرلاب، قطبنما نما، و زاویه یاب را فراگیرد این بار هم خوزه آکی بوئندیا چندین ماه متوالی در فصل بارندگی خود را در اتاق کوچکی که در پشت خانهش ساخته بود محبوس کرد تا کسی در هین تحقیق و مطالعه مزاحمش نشود. بدین طریق تمامی وظایف خود را در قبال خانوادهش به کلی کنار گذاشته و سراسر شبها را در حیات خانه صرف نگریستن مدار حرکت ستارگان کرده بود یک بار هم میخواست شیوهی برای تعیین ساعت دقیق نیمروز بیابد که چیزی نمونده بود آفتاب زده شود هنگامی که در استفاده صحیح و اصولی از ابزارالات مهارت یافت اطلاعات فضایی او در حدی بود که بی این که از خانش خارج شود میتوانست در پهنه دریاهای ناشناخته دریانوردی کند از سرزمین های غیرمسکوی دیدن نماید و با موجودات افسانهای رابطه برقرار کند. در این دوره بود که به حرف زدن با خودش عادت کرد. بی توجه به حضور دیگران مانند خوابگردها در خانه میگشت و با خود حرف میزد. این در حالی بود که ارسلا و بچه هایش در اثر کار سنگین در باغچه ها برای پرورش موز و کشت انواع صیفیجات از جمله کدو حلوایی و بادنجان کمرشان خم شده بود ناگهان بدون هیچ گونه اختار قبلی فعالیت تبالود او مختل شد و جایش را به یک نوع شیفتگی و جنون داد انگار که جادو شده باشد چند روز یک ردی فرزیات وحماور را با صدای آهسته تکرار می کرد به اینکه معنیشان را بداند تا اینکه در روز سه‌شنبه از ماه دسامبر وقت نهار ناگهان خودش را زیر بار سنگین این افکار زجرآور خلاص کرد بچه هایش برای تمام عمر فراموش نکردند که پدرشان چگونه در اثر شب زندهداری طولانی و زیر بار حجوم تخیلات زجرآورش بر سر میز کشف خود را برایشان چنین فاش کرد زمین مثل پرتغال گرده ارسولا که حسولش لبریز شده بود با خش فریاد زد اگه قرار دیوونه بشی لطن فقط خودت دیوونه شو ولی سعی نکن فکتای های کلی توی کله بچه فرو کنی اما خوز کادیو و بوهندی بود به خودش اجازه نداد تا از درماندگی زنش به حراس بیفتد ارسلا در اثر یک خشم ناگهانی دوربین او را به زمین کوبید و شکست، او هم یکی دیگر ساخت و روزی مردان روستا را در اتاق کوچک خود جمع کرد و با کلمات قلم به برایشان شرح داد که اگر کسی به طور متوالی رو به طرف خاور کشتی را کند در نهایت به همون جای اولش خواهد رسید. اما هیچ کدام از آنها چیزی از حرفهای او را نفهمیدند. در نتیجه تا زمانی که ملکیادس به آنجا برنگشته بود تا اوضاع را مرتب کند تمامی اهالی روستا تصور می‌کردند که خزارکادیو بوئندیا عقل خود را از دست داده اما ملکیادس توجه اهالی را به قریحه و هوش او جلب کرد او گفت که این مرد با استفاده از ابزارالات ساده ستاره شناسی به تئوری دست یافته که در عمل به اثبات رسیده گرچه آن تئوری تا آن زمان برای مردم ماکوندو ناشناخته مانده بود. پیرمرد کولی برای تحسین خزارکادیو هدیه‌ای به او تقدیم کرد که در آینده روستا تأثیر عمیقی گذاشت. آن هدیه یک آزمایشگاه کیمیاگری بود. در آن زمان ملکیادس به طور شگفت‌انگیزی دچار پیری زود دست گشت. در صورتی که در اولین سفر به روستا تقریبا همسن نسال خوزارکادیو بوئندیا به نظر می رسید. اما خوزارکادیو نیروی جسمانی خارقلاده خود را کماکان حفظ کرده بود و با گرفتن گوشهای یک اسب می توانست آن حیوان را به زمین بکوبد. این در حالی بود که آن مرد کولی در اثر سفرهای بیشمارش به یک نوع بیماری مزمن دچار شده و فرسوده شده بود. در حین کمک به راه اندازی آزمایشگاه خودش به خوز آرکادی و بو گفته بود که مرگ در همه جا دنبالش میکند و خشتک شلوارش را بومی کشد اما هنوز تصمیم نگرفته ضربه نهایی پنجش را بر او وارد نماید. در نتیجه توانسته بود از دست همه تا اونها و بلاهایی که بر مردم وارد می شد جان سالم به در ببرد. مثل نجات از مرض طاعون در کشورهای آسیایی یا امراض پوستی در مجمع جزایر مالایا یا مرض جزام در اسکندریه و مرض بریبری در ژاپن مرض طاعون در ماداگاسکار زلزلهای در سیسیل و فاجعه غرق شدن یک کشتی در تنگه ماژلان. با این حساب گرچه تصور میشد که کلیت های نوستراداموس را در اختیار دارد اما مرد افسردهی بود که انگار در حالهی از قم و اندوه پوشیده شده و در این حال دارای بصیرتی بود که به نظر می رسید می در ورای هر چیز چه چیزی نوفده است. او کلاهی به سر میگذاشت و جلیقی مخملی به تن می کرد که زنگار قرون و اثار را در جای جایش می دید. اما برخلاف حالت افسانهی و دانش فراوانش، انسانی بود که حس مسئولیت داشت و بشری زمینی بود که دائما گرفتار مسائل روزمره زندگی میشد از درد پیری مینالید از کوچکترین مشکلات مالی در عذاب بود و مدتها بود که دیگر نمی خندید چرا که بر اثر بیماری اسکوربیت تمام دندانهایش ریخته بود در آن هوای گرم و خفه کننده دم زور کان آن پیر مرد کولی اسرار زندگیش را فاش می کرد خوز ارکادی و مطمئن شد که به آغاز یک دوستی و رفاقت بزرگ رسیده بچه هایش از ماجراهای شگفتانگیز و جالب و او یک خورده بودند برای مثال آرلیانو که در آن زمان پسر ای بود که بیش از پنج سال نداشت در همه عمرش ملکیادس را آنطور به یاد می آورد که آن روز بعد از ظهر جلوی نور لرزان تابید از پنجره نشسته بود و با آن صدای زنگ دارش که تا عمق تاریک تخیلات نفوذ می کرد در اثر گرمای هوا عرق از سر و رویش سرازیر بود برادر بزرگترش خوز آرکادیو هم آن تصورات زیبا را به عنوان خاطرات موروسی برای نسلهای بعدی خود بر جای میگذاشت. اما برخلاف آنها ورسولا خاطره بدی از ملاقات بان پیرمرد کولی در حافظه داشت چون درست وقتی وارد اتاق شده بود که ملکیادس از روی بی‌احتیاطی یک شیشه بی جیوه از دستش افتاده و شکسته بود او هم با خشم و نفرت گفته بود اینجا بوی ابلیس به مشام میرسه ملکیادس هم گفت ابداً و گفته ی او را تصحیح کرده و افسوده بود ثابت شده که ابلیس خاصیت گوگردی داره اما این فقط کمی تسعید زنگ زده است بعد از آن هم وارد بحث علمی شده و فازلانه شروع به تشریح خواص شیطانی سنگ شنگرف کرده بود اما ارسلا توجهی به حرفهای او نکرد و بچه ها را برای عبادت همراه خود برد آن بوی تند و زننده برای همیشه در ذهن ارسولا حک شده و با خاطره ملکیادس یکی شده بود آزمایشگاه اصلی مورد اشاره عبارت بود از یک تنور تعداد کوزه قیفها انبیق صافیها و الکها لوله های مارپیچ یک ظرف شیشه‌ای با گلوی باریک و دراز یک سنگ بدلی فلاسفه و یک دستگاه تختیر که کولی ها از روی دستور ساخت انبیغ مدرن مریم یهودی ساخته بودند علاوه بر آن ابزارالات آزمایشگاهی ملکیادس نمونه هم از هفت نوفلز که به نشانه هفت سیاره بودند و فرمولهای موسا و زوسیموس یونانی را برای دو برابر کردن مقدار طلا و همچنین اکسیر یادداشتها و طرح‌های مربوط به فرایند علم کبیر برای او باقی گذاشت تا بتواند اکسیر کیمیاگری بسازد. خزار کادیو بواندیا که از ساده بودن فرمول دو برابر کردن مقدار طلا اقوا شده بود، چندین هفته متوالی تلاش کرد اورسولا را ترغیب کند تا به او اجازه دهد سکه های طلای دوران استعماری را از زیر خاک بیرون بکشد و به کمک اکسیر آنها را تا چند برابر افزایش بدهد سرانجام ارسلا هم طبق معمول تسلیم سرسختی پایان ناپذیر شوهرش شد سپس خوزارکادیو سی عدد سکه تلا به داخل یک ماهی انداخت و آنها را همراه مقداری براده میس، زرنیخ زرد، گوگرد و سرب حرارت داد تا زوب شوند بعد همه را داخل دیگی پر از روغن کرچک جوشاند تا اینکه یک نوع مایع سفت سیاه رنگ بدبو به دست آمد که بیشتر شبیه قند سوخته بود تا طلای با ارزش. بنابراین از سر ناچاری فلزات هفت سیاری مخلوط با جیوه و زاج قبرسی را به علت نداشتن روغن تروبچه در پیه خوک جوشانید تا اینکه تلاهای موروسی و با ارزش اورسولا تبدیل به تکه جسم سفت سیاه رنگی شد که به ته قابلمه چسبیده بود این بار وقتی سر و کله کولیها پیدا شد اورسولا تمامی اهالی روستا را علیه آنها برانگیخت اما کنجکاوی مردم بیشتر از ترسشان بود کولیها این بار در معابر آنجا گشت زده و با نواختن انواع آلات موسیقی سر و صدای گوش خراشی به راه انداخته بودند و یک نفر جارچی هم با صدای بلند از به نمایش گذاشتن جالب ترین کشف دانشمندان آسیای سغیر خبر میداد. داد. در نتیجه مردم با پرداخت یک سنتاو وارد چادر بزرگ محل نمایش شدند و با کمال تعجب و با دهانی باز به ملکیادس خیره ماندند که این بار برخلاف گذشته از حالت پیری درآمده و با صورتی آری از چین و چروک و با یک دست دندان تازه و سفید و براق در مقابل آنها ایستاده و برایشان لبخند میزد. اغلب مردم او را با دندانهایی که در اثر اسکربیت کاملا از بین رفته بود و با چانهای بالا آمده و گونه های گود افتاده و لبهایی مانند دو تکه چرم قهوهی رنگ که به هم چسبیده بود به خاطر داشتند در نتیجه حالا با مشاهده برطرف شدن همه علائم پیری با ترس و لرز به قدرت فراتبیعی بیچون و چرای ها پی بردند اما وقتی ملکیادس دندانهای مصنوعی خود را از دهانش خارج کرد و به آنها نشان داد ترس لحظات قبل به حراسی بی مورد تبدیل شد آنها در همان مدت کم او را به صورت همان پیرمرد سابق دیده بودند ولی ملکیادس بعد از برگرداندن دندانها به دهانش دوباره به صورت جوانی درآمد که داشت روی آنها لبخند میزد. حتی خوز ارکادی و باور کرد که دانش ملکیادس به مرحله‌ای بی‌نهایت باور نکردنی رسیده اما وقتی مرد کولی در خلوتشان طرز کار دندانهای مصنوعیش را برای او شرح داد خزارکادی نفس راحتی کشید آن آنشی برای چنان ساده و در این حال عجیب جلوه نمود که در طول آن شب تمام علاقه خود را به آزمایش های کیمیاگری از دست داد و گرفتار بحران های از بدخلقی گردید. از آن به بعد به طور مرتب و سر وعده غذا نمیخورد و سراسر روز را مشغول قدم زدن در طول و عرض خانه می شد. روزی به گفت هی چیزای باور نکردنی توی دنیا داره اتفاق میافته درست اون طرف رودخونه انوا و اخسام دستگاه سهرامیز وجود داره و ما اینجا مثل سرمون سرمونو پایین انداختیم و زندگی میکنیم آنهایی که او را از زمان پایگذاری روستای ماکندو میشناختند از مشاهده اینکه او تا چه حد تحت تأثیر و نفوذ افکار ملکیادس قرار گرفته بحت زده شدند اوایل خزار کادیو بوئندیا به نوعی رئیس جوان طایفه محسوب میشد که درباره کاشتن درختان و کشاورزی و نحوه پرورش و تعلیم کودکان به مردمش راهنمایی میداد و حتی در انجام کارهایی در راستای منافع عمومی مشارکت میکرد از آنجا که خانه او از همان ابتدا بهترین خانه روستا بود خانه های دیگر را هم با الگو برداری از آن خانه ساخته بودند. خانه او دارای یک اتاق نشیمن روشن و جمع جور بود و یک اتاق غذاخوری به شکل تراس با گل رنگارنگ زیبا به اضافه دو تا خواب حیاتی با یک درخت تنومند شاه بلوط یک باغچه که به خوبی عمل آمده بود و آغولی که گوزها و خوکها و مرغ و خروسهایشان در آن با صلح و صفا کنار هم میزیستند. اما تنها حیوانی که نه تنها در خانه او که در کل آن روستا حق زیستن نداشت خروس جنگی بود توانایی کار کردن اورسولا هم به همان اندازه شوهرش بود زنی فعال کوچکندام جدی با اعصاب قوی و پولادین زنی که در تمام طول عمرش کسی صدای آواز خوندنش را نشنیده بود. زنی که از صبح سحر تا نیمه های شب در همه جا حضور داشت و صدای خشخش زیر آهار زدهش همواره به گوش میرسید. در اثر کدبانوگری او کف خاکی کوبیده اتاقها، دیوارهای خاک سفید مالیده شده، زندگی روستامنشی و میز و سندلی چوبی که خودشان ساخته بودند، همواره تمیز و مرتب بود و از داخل صندوق لباسشان همیشه بوگ ریحان به مشاو می رسید. خوزارکادی و بو بی مردی بود که آن روستا از بد و به خود دیده بود. او محل احداث خانه های روستا را طوری طراحی کرده بود که همه اهالی به راحتی به آب رودخانه دسترسی داشته باشند. او خیابان خیابانها و کوچه ها را با چنان دقتی انجام داده بود که در ساعات گرم روز خانه ها به یک اندازه در معرض تابش آفتاب قرار بگیرند در عرض چند سال روستای مکندو با 300 نفر جمعیت مرتبترین و فعال روستا در میان روستاهای شناخته شده محسوب می شد روستایی شاد و سرزنده که هیچ کدام از اهالی بالای سیسال سال نداشتند و در آنجا هنوز کسی نمرده بود از زمان پایگذاری روستا خوزار کادیو بواندیا تعدادی تله و قفس ساخته و کار گذاشته بود و در نتیجه در مدت کوتاهی نه تنها خانه خودش بلکه تمامی خانه ها را با انواع پرندگانی چون مرغ عشق قناری مرغ زنبورخار و سینه سرخ پر کرد اما کنسرت آواز آن همه پرنده گوناگون چنان اعصاب خورد شد که ارسولای بینوا برای آنکه دیوان نشود مجبور شد گوشهای خود را با موم مسدود کند. اولین باری که کولیهای طایفه ملکیادس با آن روستا پا گذاشتند و مشغول فروختن داروهای سردرد شدند، همه متعجب شده بودند از اینکه آنها چگونه توانستند، این روستای دور افتاده را در میان آن همه با اطلاق و بیابند کلی ها هم اقرار کردند که با شنیدن صدای پرنده ها توانستند راه خود را به آنجا پیدا کنند اما متاسفانه چندان طولی نکشید که آن روحیه خلاق و اجتماعی خوزارکادی و با در اثر آهن طب ها تحقیقات نجومی رویای تبدیل انواع فلزات به طلا و اشتیاق برای کشف های عالم زایع شده و از بین رفت. آن مرد تمیز و فعال به انسان تنبلی تبدیل شد که دیگر توجهی به لباس و سروضع خود نشان نمیداد و اورسلا با یک چاقوی آشپزخانه و با هزار مكافات توانست ریش بلند و او را کوتاه و مرتب کند. تا به آدمی زاد شبی شود. در این میان خیلی ها با آنکه او را دیوانه و قربانی جادو جنبل میدانستند، باز هم وقتی میدیدند ابزارالات خود را برای صاف کردن زمین بیرون آورده و از آنها میخواهد که گروهی تشکیل بدهند و ماکندو را با اختراعات بزرگ آباد کنند بلا فاصله پشت سرش راه می افتدند. خوز کادیو و نسبت به جغرافیای آن منطقه بی اطلاع بود و تنها این را میدانست که در شرق روستا رشدکوهی سعب العبور قرار دارد و در ورای آن شهر باستانی ریو اچا واقع شده پدر بزرگش آرلیان و اول برای او تعریف کرده بود که در زمانهای گذشته سر فرانسیس دریک با قایق به شکار تمساح می رفت و پس از شکار آنها را از کاه پر می کرد و برای ملکه الیزابت می فرستاد. خوزارکادی و با زمانی که جوان بود به اتفاق ایل و تایفه خود رحم از زن و مرد و کودک و به همراه حیوانات خانگی و اساس زندگیشان در جستجوی یافتن راهی به سوی دریا بود. آنها رشتکوهای متوالی را یکی پس از دیگری طی کرده بودند تا اینکه پس از 26 ماه سرگردانی دست از جستجو و تلاش برداشته و روستای ماکوندو را پایگذاری کردند. در غیر این صورت مجبور بودند از همان را بازگردند به گذشته بازگردند که علاقه به آن نداشتند. در سمت جنوب تعدادی طالاب وجود داشت که پهنه آنها پوشیده از پسماننده های گیاهان آبزی بود. و تمامی گستره عظیم آن های بزرگ طبق گفته کلی‌ها بی‌انتها بود برکه بزرگی در غرب واقع بود که با آب‌های بی‌انتهای دیگری در هم می‌آمیخت در آن آبها نوعی ماهی وال وجود داشت با پوستی نرم و سر و بالاتنهی زنانه که با جذابیت غیرعادی پستان‌هایشان هستی خیلی از دریانوردان را برباد داده بودند آن کلی ها به مدت شش ماه در روی آن برکی عظیم دریان وردی کرده و سرانجام به باریکی از خشکی رسیده بودند که قاطرهای چاپار پست از آن عبور می کردند. بر مبنای محاسبات خوز ارکادی و تنها راه ممکن برای تماس با دنیای متمدن در سمت شمال قرار داشت. به همین دلیل ابزار کار جادهسازی را فراهم کرد و در اختیار مردانی قرار داد که در زمان پایگزاری روستا در کنار او بودند. خودش هم ابزارالات جهتیابی و نقشههای موجودش را به داخل کیسه خوابش انداخت و به تنهایی هدایت اکتشاف ای را به عهده گرفت. در روزهای اول به مانع قابل توجهی برخورد نکردند، ابتدا از کناره سنگی رودخانه جلو رفته و به جایی رسیدند که سالها پیش آن زره فلزی را یافته بودند. از آنجا راهشان را کچ کرده و از طریق راه باریکی در میان درختان پرتغال خودرو وارد جنگل شدند. در پایان هفته نخست بود که موفق شدند گوزنی را شکار کنند. نیمی از گوزن را کباب کرده و خوردند، و باقی را برای روزهای پیش رو نمکسود کردند و با خود حمل نمودند با این کارشان سعی داشتند خوردن اجباری گوشت توتی آمریکایی را که کبود و بدبو بود و مزه تندی هم داشت تا حد امکان عقب بیندازند پس از آن به مدت بیش از ده روز چشمشان به آفتاب نیفتاد زمین زیر پایشان نرم و لذت شد انگار که روی خاکسرهای گل شده آتشفشان حرکت بکنند سبزیها و بوته های اطراف در هم تنیده میگشت و صدای آواز پرنده ها و جیغداد میمونها دورتر و دورتر میشد. از زمین و زمان غم و اندوه مردان پیشگام در گشت اکتشافی خود دران بهشت دم کرده و ساکت احساس می کردند زیر فشار خاطرات دور گذشتهشان خرد خورد خود را مانند آدم و هوای قبل از ارتکاب گناه تصور می کردند. وقتی قدم به جلو می گذاشتند، چکمه هایشان در برکه های روغنی فرو می رفت و از آنها بخار بلند می شود. ساتورهایشان ساتور هایشان زنبخ های سرخ فام به رنگ خون و سمندرهای طلایی را در مسیر حرکتشان تکه تکه کرده و راه را باز می کرد. یک هفته تمام به اینکه حرفی با هم بزنند مانند آدم های خوابگرد در میان دنیای از غم و اندوه جلو می رفتند. تنها نور کرم های شبتاب بود که گاهی روشنی بخش دنیای آنها میشد. ریههایشان آکنده از بوی خفه کننده خون بود از طرفی راه رفته را هم نمی توانستند برگردند چرا که علفها و های قطع شده به سرعت رشد میکردند و به حالت اول در می آمدند و پیدا کردن مسیر را ناممکن میساختند ساختند خوزه بوئندیا و بو برای کاستن از فشار روحی آنها گاهی می گفت نداره مهم اینه که مسیر حرکتمونو گم نکنیم خود او از قطم نمایش چشم بر نمی تا آنکه توانست گروه مردان اکتشافی همراهش را به سمت شمال ناپیدا هدایت کند و از آن منطقه سهرامیز خارج شدند. شب تیره و بیسه ای بود اما هوا به تدریج داشت صاف و تمیز می شد. آنها که خسته و فرسوده شده بودند ننوهای خود را به تنه درختان بسته و برای بار نخست در طول دو هفته راه پیمایه کورکورانه به خواب عمیقی رفتند. از خواب که بیدار شدند آفتاب حسابی بالا آمده بود و از مشاهده چیزی که جلوی چشمشان بود بهت زده گشتند. یک کشتی بادبانی عظیم اسپانیایی در میان انبوهی از سرخصها و درختان خرما و در نور و سکوت صبحگاهی فرو رفته و کمی به یک طرف خم شده بود. بادبانهای پاره کشتی از دکل‌های نسبتاً سالمش آویزان بودند بدنه آن از لایه سنگ شده از خزه‌های نرم پوشیده بود و قرص و محکم به سخره های کناری لم داده بود طوری که انگار در جای طبیعی خودش قرار دارد یعنی در جای خلوت و فراموش شده و دور از فساد زمان و عادات خرابکاری و لانسازی پرندهها. وقتی آن گروه اکتشافی با احتیاط و دقت کامل داخل کشتی شدند، چیزی جز جنگلی از خزه و گلهای ریز نیافتند. کشف آن کشتی بادبانی نشانه نزدیکی به دریا بود. این کشف اشتیاق خوز ارکادی و را در کاوششان کاهش داد. او این را نشانه از دوز و کلک سرنوشت تصور کرد. با آن همه زحمت و تحمل زجر و شکنجه به دنبال دریا گشته بودند به اینکه آن را بیابند اما حالا به طور ناگهانی و به اینکه به دنبال آن آمده باشند یافته بودندش انگار همچون شیعی از بین نرفتنی سر راهشان قرار گرفته بود سارها بعد که سرهنگ و بوندیا دوباره از آن منطقه عبور کرد آنجا به یک جاده ویژه چاپارهای پستی تبدیل شده بود و تنها چیزی که از کشتی باقی مانده بود اسکلت سوختهی در میان مزرعی از کشت خشخاش بود. تازه آن موقع بود که قانع شد داستان پدرش درباره وجود آن کشتی در وسط خشکی حقیقت داشته. از خود پرسید این کشتی چطور به آنجا آمده یا آورده شده؟ ولی خوز ارکادی و که بعد از چهار روز راهپیمایی دریا را یافته بود این سوال را از خود نپرسیده بود زمانی که در مقابل پهنیان دریای کفالود خاکستری رنگ که ارزش و لیاغتان ماجراجویی از خود گذشتگی را نداشت ایستاد رؤیاهایش به پایان رسید پس با صدای بلندی فریاد زد نهنت بر شیتون، ما از همه طرف تو محاصره این عقیده که روستای مکندو بر روی یک شبه جزیره واقع شده ناشی از یک نقشه جغرافیایی خیالی بود که خوز ارکادی و پس از بازگشت از سفر اکتشافی در حال عصبانیت ترسیمش کرده بود در آن نقشه مشکلات راه های ارتباطی را به مراتب شدیدتر تر جلوه داده بود طوری که انگار میخواست خودش را به خاطر بیفکری در انتخاب آن مکان برای احداث روستا تنبیه کند او با تأسف فراوان به همسرش ارسلا گفت عمر خودمون اینجا هدر میدیم و بی این که فایده‌های های علم و دانش نصیبمون بشه میپوسیم در طول چند ماه آینده هر زمان که در اتاق کوچک خانهشان تنها میماند از آن به عنوان آزمایشگاه بهره میبرد. وان فکر مانند ذهن او را میخورد تا اینکه به نظرش رسید روستای ماکاننده را به منطقه بهتری انتقال دهد. اما در آن موقع که افکار تباالود شوهرش را پیش بینی کرده بود، مخفیانه و مورچهوار تمام زنان روستا را خبردار کرد. او؟ زنان را علیه شوهرانشان که در اثر تلقینات خوزارکادیو خود را برای مهاجرت آماده میکردند برانگیخت. برنگیخت خوزارکادیو بوندیان نتوانست بفهمد که نقشش از چه زمانی و به خاطر کدام نیروهای مخالف در بحانه ها و تفر رفتن ها گرفتار شده تا اینکه کاملاً کاملا ناامید شد و طرحش به صورت یک سراب درآمد. ارسولا با توجه خالصانه او را زیر نظر داشت آن روز صبح وقتی دید که او در آزمایشگاه کوچکش لوازم آزمایشگاهی را جمع کرده و در صندوقهایشان قرار میدهد و در همان حال با خودش هم حرف میزند حتی دلش برای او سوخت آنقدر صبر کرد تا او کار خودش را به پایان رساند در جعبه را میخکوبی کند و حروف اول اسم خودش را با یک قلم روی رویان بنویسد به این که او را برای این کارهای بیفایده سرزنش کند حالا میدانست که شوهرش خبر دارد چرا که وقتی زیر لب با خودش حرف میزد راجع به این موضوع قرلان می کرد که مردان روستا این بار در اجرای تصمیمی که گرفته پشتیبانش نخواهند بود به هر حال اورسولا ساکت ایستاده بود و تنها هنگامی که او داشت در اتاق را از جا در می آورد به خود جرأت داد و پرسید که چه کار دارد میکند. او هم با لحن تلخ خاصی پاسخ داد چون کسی دیگه مایل و ترکی اینجا نیست پس ما خودمون تنهایی میریم اما ارسولا از این حرف شوهرش دلخور نشد و گفت ما هم قرار نیست بریم چون پسرمون همینجا متولد شده خوزارکادیو گفت خب البته اما ما کسی رو اینجا از دست ندادیم کسی که عزیزی رو از دست نده و زیر خاک دفنش نکرده باشه و اونجا تعلق نداره این بار ارسلا با لحن ملایم اما جدی پاسخ داد: اگه قرار من بمیرم تا شماها اینجا بمونید با کمال میل حاضرم بمیرم خوز آرکادی و هرگز فکر نمیکرد که همسرش در تصمیم خود اینقدر جدی باشد البته شوهرش سعی کرد به روش‌های مختلف او را اقوا کند. وعده سرزمین موعودی را به او داد که در آنجا فقط با پاشیدن نوعی مایع سحرآمیز بر روی زمین، درختان و بوته‌هایش هر نوع میوه‌ای را که آرزو کنند بلا فاصله به عمل می‌آید. جایی که انواع داروهای مسکن به قیمت عادلانه عرضه شود و خیلی چیزهای دیگر. اما گوشش به این اقواگری ها بدهکار کار نبود. بنابراین پاسخ داد به جا اینکه مدام بچرخی و درباره ابداعات مسخرت فکر کنی باید نگران پسرات باشی. نگاه کن ببین تو چه وضعی هستم. درست مثل بچه علاقه دارن چموش بازی در میاره. خوزارکادی و با اینبار این بار حرفهای همسرش را کلمه به کلمه تحویل گرفت. از پنجره نگاهی به بیرون انداخت. و بچه های پا برهنه ای را زیر نور آفتاب در باحچه خانهشان دید. اوزای را حس کرد که در اثر ورود ارسلا به وجود آمد و موجب تحولی در او شد. یک تحول اسرارآمیز و قطعی که او را از زمان و مکان خودش ریشهکن کرده و به زوایای کشف نشده خاطراتش کشید. ارسلا هم که مطمئن شد آن خانه را تا پایان عمرش ترک نخواهد کرد مشغول آب و جارو کردنش شد. او هم از همان جایی که دست به کمر ایستاده و محو تماشای بازی بچه هایشان بود، آنقدر به آن صحنه خیره ماند که چشمانش آب افتاد. و همین خاطر با پشت دست آب چشمانش را خشک کرد و نفس عمیقی را که در سینه‌اش حبس کرده بود، با آهی ها که از تسلیم در مقابل اراده همسرش بیرون فرستاد و گفت خیلی خوب وچه ها به بیان کمک کنن تا وساله از داخل جوا در بیاریم پسر بزرگشان خوزارکادیا دوم حالا نوجوان چهارده ساله بود با کله چهارگوش و موهای پرپشت که از نظر خصوصیات اخلاقی شبیه پدرش بود گرچه آهنگ رشد و نیروی جسمانی متناسبی داشت اما علائم اولیه‌ی عقب‌ماندگی ذهنی در او دیده می‌شد او در زمان حرکت ایل جهت یافتن محلی برای اسکان و هنگام گذر در راه‌های صعب‌العبور کوهستان‌ها پیش از رسیدن به محل فعلی و پای‌گذاری روستای ماکوند به دنیا آمد پدر و مادرش از اینکه او موقع به دنیا آمدن بدنش مانند حیوانات پوشیده از پشم نبود از نگرانی در و شکر خدا را به جا آوردند آرلیانو هم اولین کودکی بود که در ماکوندو پا برسه گیتی گذاشت و در همین ماه مارس شش ساله می شود. او بچه ساکت بود که اغلب در خودش فرو می رفت. هنوز در شکم مادرش بود که صدای گریستنش شنیده شد و با چشمانی باز به دنیا آمد موقعی که داشتند بند نافش را می‌بریدند سرش را مدام به این طرف و آن طرف می‌چرخاند و با دقت و کنجکاوی صورت اطرافیان را ورانداز می‌کرد. بعد بدون توجه به آنهایی که نزدیک می‌آمدند تا نگاهی به او بیاندازند، با کنجکاوی تمام به تیرک های چوب نخل سقف است که انگار می‌خواستند در زیر فشار کاهگل خیس شده در اثر باران‌های شدید در هم شکسته و فرو بریزند. اورسولا دیگر چنین نگاهی را از او به خاطر نمی‌آورد تا روزی که آرلیانای کوچولو سه ساله بود و درست زمانی وارد آشپزخانه شد که مادرش داشت قابلمه سوپ در حال جوش را از روی اجاق برمی‌داشت تا روی میز بگذارد. بچه مبهوت بان با قابلمه که قرص و محکم در وسط میز قرار گرفته بود نگریست و گفت: قابلمه الان میافته و درست بعد از این حرف قابلمه سوپ انگار که نیروی از درون بان فشار بیاورد تکانی خورد به لبه میز نزدیک شد به روی کف آشپزخانه سرنگون گشت و سوپ درون آن بر روی زمین ریخت اورسولا که از این پیشگویی فرزند خود شگفت زده شده بود موضوع را برای شوهرش تعریف کرد اما او آن را پدیده‌ای طبیعی دانست تعبیر آرکادیو همیشه این چنین بود با بیتوجهی نسبت به وجود پسرانش دوران کودکی را نوعی نقصان عقلی به حساب می آورد. بخشی از این بیتوجهی هم به خاطر آن بود که اکثر اوقاتش را صرف تحقیقات شگفتانگیز خود می کرد. از آن روز بعد از ظهر به بعد وقتی بچه ها را به داخل آزمایشگاهش صدا کرد تا در باز کردن بسته ها و جعبه های وسایل کمک کنند بهترین اوقاتش را صرف آنها کرد. به این صورت که پس از اتمام باز کردن بسته ها و درآوردن وسایل آزمایشگاهی داخل یک اتاق کوچک جداگانه که دیوارهایش به تدریج از نقشه ها و طراحی عجیب و غریب پوشیده میشد به آنها خواندن و نوشتن و عمل جمع و تفریق را یاد داد و تا آنجا که معلوماتش قد میداد حتی کمی هم بیشتر به خودش فشار آورده و در عجایب اجایی به دنیا برایشان حرفا زد از این طریق بچه ها فرا گرفتند که در انتهای جنوبی قاری آفریقا انسانهایی باهوش با و سهل جو هستند که کاری ندارند جز اینکه در گوشه بنشینند و با اندیشیدن وقت گذرانی کنند. همینطور یاد گرفتند که می در دریای اژه با پای پیاده حرکت کرد و از این جزیره به آن جزیره پرید تا به بندر سالونیکا رسید. آن جلسات خیال پردازانه بحث و تعلیم توسط پدرشان چنان در ذهن بچه ها شد که سالهای بعد یک ثانیه پیش از اینکه افسر ارتشی مأمور اعدام به جوخی آتش دستور تیرباران را بدهد این بار آرلیانو که به طور خودخوانده سرهنگ آرلیانو نامیده میشد و در مقابل آنها به تیرک اعدام بسته شده بود یک بار دیگر به یاد آن بعد از ظهر داغ در ماه مارس افتاد که داخل آن اتاقک کوچک پدرش در حالی که با دستهای گوشوده ایستاده و مشغول یاد دادن درس فیزیک بود با شنیدن صدای فلوت و تبلوسنج سنج ها که از فاصله دور به گوش رسید درس را نیمه تمام رها کرد و با چشمانی بدون حرکت به بیرون خیره ماند. معلوم شد که کولی ها یک بار دیگر به آنجا میآیند تا آخرین و شگفتنگیزترین کشفیات حکمهای منفیس را با آب و تاب تمام برایشان به نمایش بگذارند. این کولی ها همگی جوان بودند. مردان و زنان جوانی که فقط زبان خودشان را بلد بودند. انسانهای زیبا با دستان ظریف و پوستی نرم که با رقص و نوای موسیقی حققای شادی بخشی در خیابان‌ها به راهداختند. توطی های رنگارنگی که کلمات ایتالیایی را از حفظ می به همراه آورده بودند و مرغی را که با شنیدن نوای دایر زنگی یکصد تخم طلا گذاشت و میمونی که افکار مردم را میخواند و یک دستگاه چند کاره که همزمان می دکمه بدوزد و تبر را پایین بیاورد همینطور دستگاه دیگری که می خاطرات بد را از ذهن آدمی پاک کند و زمادی برای فراموش کردن گذر عمر و هزار نو اختراع و کشفیات دیگر. همه آنقدر هوشمندانه و غیرعادی بودند که خوز آرکادیو و میبایست می بایست یک ماشین حافظه اختراع نماید تا بتواند آنها را به خاطر بسپارد. برحال کلی ها چنان تحولی در آنجا به وجود آوردند و موجب ازدهام شدند که خود مردم روستای ماکوندو در خیابانها راه خیش را گم می کردند خوزار آکادی و با اندیا در حالی که دستهای پسرانش را چسبیده بود تا در آن شلوغی گمشان نکند با تنه زدن به یک کلی اکوبات باز دندان طلایی و شعبده بازی با شش بازو و در حالی که نفسش از بوی کود و بوی عرق پای جمعیت بند آمده بود مانند آدم های سرگشته به هر سراخ سنبهای سر میکشید کشید بلکه ملکیادس را در میان آنها بیابد تا اسرار بی پایانان پدیده شگفتانگیز را برایش فاش کند از چند نفر کولی سراغ او را گرفت اما نه آنها زبان او را فهمیدند و نه او زبان آنها را تا اینکه به جوی رسید که معمولا در زمان اقامت کلیها ملکیادس بساط و چادر خود را در آنجا برپا میکرد این بار اما به جای او مرد ارمنی حرفی را یافت که با جار زدن به زبان اسپانیایی یک نوع شربت نامرعی کننده را جهت فروش تبلیغ میکرد و محتویات کهربای رنگ لیوانی را یک نفس سر میکشید. خوز ارکادی و هم با آرنج خود راهی در میان ازدهام جمعیتی که با دهان باز شاهدان نمایش بودند برای عبور خودشان باز کرد و توانه سوالش را بپرسد اما کولی ابتدا او را در حالی از نگاه وحشتهاور خود فرو برد و سپس تبدیل به توده سیاه غیرمانند متعفنی شد که از آن دود بلند می شد و همزمان صدایی در هوا تنین انداز گشت گیادس موردو روزارکادیو بوندیا که از شنیدن این خبر ناراحت شده بود برای لحظهای بدون حرکت باقی ماند و سعی کرد بر غم و اندوه خود غلبه کند تا اینکه مردم متفرق شدند و به سوی شعبده بازان دیگر رفتند و آن توده ارمنی کم حرف هم به طور کامل بخار شده و ناپدید گردید. بعدها سایر کولی ها تایید کردند که ملکیادس در ساحل سنگاپور در اثر تب از پای درآمده و جسدش را نیز در عمیق‌ترین نقطه دریای جاوه به آب پرت کرده بودند. طبیعی بود که بچه‌ها چندان علاقه‌ای به شنیدن این خبر نداشتند ولی در عوض میل داشتند پدرشان آنها را برای تماشای ابداعات شگفتانگیز تازه با کمای منفیس با خود ببرد که در ورودی یک چادر بزرگ تبلیغ می کردند و طبق مطالبی که گفته میشد گویا به حضرت سلیمان تعلق داشت. به هر حال آنقدر پافشاری کردند تا خزار کادیو با ندیا سیسه که پول خرد رایج خودشان را بابت ورودی پرداخت و پسرانش را به وسط چادر برد. در آنجا یک قول با بدنی پشمالو و سری تراشیده که یک حلقه مسی از پری بینیش آویزان بود و یک زنجیر آهنی سنگین هم به مچ پایش بسته شده بود از کنار صندوق دزدان دریایی به مردم نگاه می بعد وقتی در صندوق توسطان گول باز شد درون آن جسم بلوری درشتی مملو و سوزنهای ای قرار داشت که نور آفتاب دم غروب را به صورت ستاره های رنگین منتشر می کرد خوزار و بوئندیا که میدانست منتظر توضیح و شرح فوری درباره باری آنچه که می بینند هستند کمی دست پاچه شد و زیر لب من و من کنان گفت اینج، این بزرگترین الماس جهانه آنکولی با شنیدن حرف او مداخله کرد و گفت نه این فقط یه تیکی یخه خوزارکادی و با که معنی حرف او را نفهمیده بود دستش را به سوی آن تکه بلوری دراز کرد اما قول محافظ بلا آن را عقبتر کشید و گفت برای لمس کردنش باید پنج سکه دیگه بدی خوزارکادی و با پنج سکه دیگر به آنها پرداخت و دست خود را به مدت چند لحظه روی آن تکه یخ چسباند. قلبش از نشات بچگانه و در این حال ترس از آن شیء اصرا رامیز ملامال گردید. بعد بدون اینکه بداند چه باید بگوید ده سکی دیگر پرداخت تا پسرانش هم آن جسم عجیب فوقلاد سرد را تجربه کنند. پسر بزرگش خوز کادیوی دوم از دست زدن با اون امتنا کرد. اما پسر کوچکش آرلیانو قدم جلو گذاشت و کف دست خود را روی یخ نهاد. ولی بلا فاصله دستش را رو عقب کشید و در حالی که بهت زده شده بود گفت داره میجوشه پدرش توجهی به گفته او نکرد و در حالی که در اثر آن معجزه عینی از خود بیخود شده بود همه چیز را در رابطه با ناکارا بودن و پوچ بودن وظایف و اینکه جسم ملکیادس در آب رها شده تا تومه ماهی ها بشود فراموش کرد بنابراین پنج سکه دیگر پرداخت و دوباره دستش را روی آن تکیه قرار داد و طوری که انگار دستش را بر روی انجیل مقدس گذاشته و دارد شهادت می دهد گفت بزرگترین اختراع دوران ما همینه